بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازم احرابان نهایت باره یاسین قسم قرآن صاحب حکمت تو واکعا از پیانبرانی براه راست این کتاب ای صاحب قدرت منی و لهربان است تا قومی را بیم دهی که پدران ایشان بیم دادن نشده هم. پس ایشان غافل مانده هست بگمان حکم عذاب بر بیشتر ایشان ثابت شده است که ایشان ایمان نمی آره. ما به گردن ایشان توق که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور رو بر خود دیده نمی تواند در پیش رویشان سدی و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و روی ایشان را پوشاندیم که هیچ چیزی را نمی بیند و ایشان هر دو حالت یکسان است چی آنها را بترسانی و چه نترسانی ایشان ایمان نمی آرند واقعا تو کسی را به گونه معصر بی می که پند را به کار بندد و از خداوند رحمان نه بترسد پس چنین کسی را به آمرزش و مزد گرامی مجدگانی بدیم. بیگمان این ما هستیم که مرده را زنده می گردانیم و اعمالی را که از خود پیشتر فرستاده اند و نیز آثاری را که به خود بذاشته اند همه آن را در کتاب روشن احسایه گرفتیم. برایشان اهل قریه را مثال بزن چون در آن پیامبران آمدند. آنگاه که در اول و ایشان دو تن را فرستادیم ولی اهل طاریا آنها را تکذیب کردند آنها را با وسیله سیومین پیامبر تقویت بخشیدیم ایشان گفتند ما به سوی شما به حیث پیامبر فرستاده شده ایم مردم گفتند شما نیستید مگر بشری مثل ما و خداوند رحمان چیزی به وسیله شما ناظر نکرده است شما ما از دروغ می‌گویید این پیامبران گفتند پروردگار ما می داند بیگمان ما ما سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم. ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم اهل آن گفتند ما قدم شما را به فعال بهت گرفتیم و اگر خداری نکنید یکینا شما را سنسار می کنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی با شما عاید می شود. پیاموران گفتند فال بد شما با خود شماست. آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر بلکه شما قوم تجاوزکار هستید. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیاموران را پیروی کنید. کسی را پیروی کنید که از شما مزدی برای خود نمی خواهد و ایشان خود رحیابند. مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده می آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بیهیرم موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفن نمی کند و مرا نجات نمیدهند. یعنی دادن نمی توانند و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم من به با پروردگار شما ایمان آوردم لذا از من بشنوید بعد از شهادتش به او گفته شد به بهش درای گفت ای کاش قوم من آگاه می به آمرزش که پروردگارم به من ارزاگی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است بعد از وای بر طومش هیچ لشکری را از آسمان نفرستادیم و نه هم مال فرود آرنده چنین لشکری می باشیم این جزا دادنشان جز یک آواز شدیدی نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد ای وای بر این بندگان که هیچ پیانبری به ایشان نیامد مگر اینکه او را استحضا می کردند آیا ندیدند که پیش از ایشان نسلهای بسیاری را حلاق ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی گردند؟ پرچند همه ایشان در مجموع و نزد ما حاضر شدنی می باشند. و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است آن را زنده گردانیدیم و از آن غلع بیرون آوردیم که از آن می خورند. و در آن باغهایی را از درختان خرما و انگو را فریدیم و در آن از چشمه ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند این میوه و را دستشان نساخته است پس آیا شاک نمی کنند؟ پاک است آنکه همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع ای انسان را و از چیزهایی که نمی دانند همه را جفت آفرید و شب بر ایشان نشانه ایست از آن و روز را می کشید. پس ناگهان اینان در تاریکی فرو می روند و خورشید بر قرارگاه خود می رود یعنی مدار خود را تعیین می کند این است تقدیر خداوند صاحب قدرت مونی و دانا و برای ما منزلهایی را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد یعنی دوباره به شکل ماه نو دراید نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب به روز ثبقت جوینده است هر یک در مدار خود شنا می ورسد و برای ایشان این نشانه است که ما زوریه یعنی نسل ایشان را در کشتی های انباشته شده برداشتیم و برای شان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم. پس در این حال نه برای شان فریاد است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شوند. مگر آنکه که رحمت خیش ایشان را نجات دهیم و برای اینکه تا دوره محدود بهرمندی حاصل کنند و چون به ایشان گفته شود و آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و با شما مرحمت شود به این سخن احتنای نمی کند و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آن که از آن روگردان و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید کافران به مسلمانان می آیا به کسی تعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او تعام می داد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری کافران می اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود انتظار نمی کشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند می گویند وای بر ما چی کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت. آره این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز حیبتناکی صورت میگیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شود امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه چه می کردید جزا داده نمی شود بگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های از دارند برای ایشان در آنجا میویل عزیز و همه چیزهای خاطر خواه است به ایشان طرف پروردگار کار سلام گفته می شود ای مجرمان، شما امروز جدا شدید ای فرزندان آدم آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست و ما را بپرستید که این است راه راست و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت آیا دانستید این است همان دوزخی که وعده داده شدید امروز در آن درایید به سبب آنکه کافر بودید امروز بر دهنشان مهر می و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم گیریم که برای پیمودن راه راست پیشلستی کردند از کجا راه را می بینند؟ و اگر بخواهیم ایشان را جا به جا مسخ می کنیم. در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشت میتوانند و و هرکی را عمر دراز می دهیم او را در خیلطت او به ناتوانی اولیش باز میگردانیم آیا نمی ما به او یعنی پیامبر شیر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست ای این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شوید آیا نمی بینند که ما برایشان جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته از شرفایانی آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ این پایان را رامشم ساختیم که برخی از آنها و سیله سواریشان است و از برخی از آنها می خورند و در آنها برایشان منفعت ها و نوشیدنی هایست. پس آیا شکر نمی کنند؟ و جز خدا معبودان دیگری گرفتند و این امید که یاری شود واکد این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بودپرستان بر ایشان لشکریست، برای افتادن به دوزخ آماده شده پس گفتارشان تو را اندوگی نسازد بگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانید. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خسومت کننده آشکار است و برای ما مسئله زد و منشه آفری نش خود را فراموش کرده گفت چی کسی می تواند دستخانه ها را در حالی که پوسیده است زنده سازد؟ بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را فرید است و او به هر آفری داناست ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما از آن آتش می افروزید آیا آن کس و زمین را فرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند. آری او تواناست و اوست آفری من دانا بیگمان فرمان وای این است که چون چیز را اراده کند برایش میگوید گوید و آن چیز فورا می شود پس پاک است زاکی که مالیکیت و فرمان روایی همه چیزها به او است و به سوی او بازگردانیده می شود